حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردا یه روزه بهتر اما کبادارت چون بلدی بخندی با چشم دل بازی با اش دل ببندیم ازبا که دل به سبزه دچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و فردا به که قلب سبز دچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و سلام علیکم حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها یک هفته دیگه یک رادیو پس دیگه من فرشید منافی با شما برو بریم خبارو همه چی ردیفه میبینم که تحریم ها جدی جدی داره برداشته میشه و احتمالاً تا دقایقی دیگه شاید هم دیگه خبرش اعلام بشه و بعد از سالها بالاخره مزه تحریم نبودن و مثل باقی مردم دنیا و حال مثل باقی مردم دنیا بودن یعنی تحریم نبودن رو بچشیم دیگه البته لازم من تذکر بدم حکومت ایران قرار نیست از بشه ها دوستان عزیزان شنوندگان عزیز ووش میکنین حکومت غنی سبذ بشه یعنی دیگه خیلی هم فکر نکنین دیگه مثلا شبیه بقیه مردم دنیا هستین یه وقت مثلا خبر و تحریم ها که اعلام میشه یعنی میگم زیادی خوشحال نکنین چه میدونم مثلا رو بردارین نمیدونم از این حرکت ها نکنین ها نه تو چارچوب همین نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهیم بود فقط تحریم نخواین بود این فقط تفرقیشه همینه لطفا در همین حد شادی کنین در حال ما پیشاپیش تبریک میگیم امیدواریم لغو این تحریم ها پیش زمینه ای بشه برای لغو تمام محرومیت هایی که دوچارشیم حالا ممکنه گفتم یه دفعه تا دقایقی دیگه اگه که ما رو بردانه بگن آقا تحریما تموم شد ما رفت ما میریم برای بچهای رادیو فردا میان برنامه ویژه تحلیلی و خبری دارن راجع به همین موضوع <تصفيق> فرشید سلام میدونم شنبه میای میگی برنامه 966ه همش 33 تا برنامه دیگه داری که اجرا بفرمایید ولی حداقل امروز هیچ نگو چرا نگه واقعا من دیگه اینجوری نمیتونم انقواسه دارم چیزی دلم درد میکنه انقا گریه میکنم که همش رو هم تکون میخوره آخی. یه امروز هیچی از این که چقدر مونده نگو بسو بیکسره میما هستم نیما آخه چرا نگم ببین چرا واقعیت های تلخ زندگی رو هچنان من دامن مخفی کنم چرا؟ من که میگم به هر حال ولی هم دیگه سیاه نمایی نکن دیگه 966 که باشیم یعنی امروز که 966 باشیم 34 تا برنامه دیگه مونده یعنی همین این برنامه رو حساب نکردی 34 تا مونده نه 33 تا. بعد من یه چیزی را من متوجه نشدم شما احساسات جریه دار میشه نفهمیدم چرا نواهی شیکم و زیر شیکم و دل رودت درگیر میشه بیشتر من متوجه نشدم مشکلت چیه حال امروز شنبه 26 ماه 1394 و موضوع این هفتمون زیبایی ایرانیه و الان میخوایم بریم ببینیم که شاعرمون چه سروده شاعر رادیو پسوردا این هفته سروده من میخوام عمل کنم گونه بهتر بذارم روی قحص کمرم تتو دوتا پر بذارم دماغم اقابی سربالا و تیز میخوامش یه جوری خواستنی و دیدنی و ریز میخوامش پروتز چند خریدی خارجیه یا مال چین نکنه از اون بالا سر بخوره بیاد پایین زیر ابروهات کجاست ای پسر شیتون بلا؟ داشمون سیکس پک و علاک شده با وزنه ها، چربیاتو در بیار، پوستتو هم کمی بکش، تو چه میکنی ببر بکن دوباره مش، دو سیسی ژل سی بزن و عالمی رو دیوونه کن، واسه چسب دماغت میگرنتو تو بهونه کن. حالا عکستو بذار تو اینستا مردم ببینن تا همه با دیدنش پاشم بلند بشینن. با تشکر از این کارمون تو برنامه‌های این هفته با موضوع بوکشمو خوشگی کن یا همون عمل‌ها و اقدامات منجر به زیبایی در خدمت شما هستیم بود. بنابراین اگه دماغتون عمل کردید یا نکردید، ابروهاتون رو تتو کردید یا نکردید، پوستتون رو کشیدید یا نکشیدید فرقی نمی‌کنه. رو تخت چرخدار بیمارستان اگه دارن می‌برن چربی‌های شکمتون رو درمیارن یه مکسی بکنین. به برنامه‌های این هفته ما گوش بدین شاید نظرتون عوض شد، البته شاید آدم نشود. مثلا به دکترتون گفتین حالا که دست به تیغ شده مثلا چه می‌دونم یه دستی هم به چربی‌های پهلوتون بکشه. از ما گو بود عمل کردتونیم و زیباتونیم کلاً <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> به همونطوری که گفتم این هفته میخوایم در مورد زیبایی ایرانی حرف بزنیم و در روز اول هفته که امروز باشه صاف میخوایم بریم سراغ جانبازان عرصه زیبایی که برای کمی خوشگلتر شدن زخم تیقه ها و ضربه چکش ها و خرت خرت عره ها رو با پوست و گوشت و استخونشون تعمل کردن و میکنن پس سلام امشب ما، سلام مخصوص امشب ما خدمت همه دماغه ها گونه کاشده لب پروتزی هایی که دوست داشتن پول داشتن البته جرعت داشتن و عمل جرایی کردن اصلا خیلی هم خوب کاری کردن به ما چه واقعا ها والا سلام فرجی جون یه هفته دیگه رسیدو بریم سراغ نسیشته تهران که هواش فوق‌العاده خوب و تمیزه جالبه اینه که پایداری هوا و بوی آلودگی نشده من خود امروز سوتونه و علیمی رفتم کاملا کوه مشخص بود هوا مطلوب و خوب و آروم داره احتمالاً از دوشنبه هم بله. یه سامانه بارشی جدید وارد کشور میشه که از دوشنبه و تا چهارشنبه کشور رو تحت تاثیر خودش قرار میده. جزایر به کوچک تا تومب بزرگش پی‌سری لاوان ابوسام احتمالاً طوفانی خواهد بود. قربونت، خدا هستم از تهران. بله خیلی ممنونم امجد جان. حتما فرمايشات شما رو ما با متخصص هواشناسی برنامه‌مون چه کردیم ایشون فرمودن این سامانه بارشی که از اواسط هفته وارد کشور میشه فقط نیمه غربی و برخی از نواحی شمال و شمال غربی کشور رو تحت تاثیر قرار میده اینه که بر بچهای اینوری یعنی سمت خراسان و شیراز و کرمان و منطقه مرکزی دلشون رو برای برف و بارون صابون نزنند. به هر حال خیلی هم ممنون از شما دمتون هم نکنن، ناخونیم پیچ همینجوری خوش اومد دیگه همین چی نکنیم نکنید نکنن تحریم منظورتون بود زیبا عمل چی کار نکنیم نکنید نکنن همینجوری خوشش اومد دیگه اشکالاً او یس به سلامتی علمای نظام ظاهرا دوستان عزیز بعد از اینکه با غرب آشتی کردن حالا دارن کم کم با موسیقی هم آشتی میکنن و از فردایش باید نیست که کارشناسان دینی در تطبیق دادن خودشون با شرایط زمانه به این نجه برسن که غیر هم تحت شرایطی حلاله و عملت از این بلا تکلیفی در بیان البته الان هنوز به غیر نرسیده ها دقت الکی پا نشین بشین آقا بشین خانم عزیز بشین فقط موسیقی الان گوش کنید خودتون ببینید حجتالستان پناهیان در کنگره تجلیل از شهده های موسیقی هستن چی فرمودنشون واقعا میتونه انسان با موسیقی به حقائق معنوی بالا دسترسی پیدا بکنه بخشی از موسیقی ها هستن که قطعا برای پرواز طراحی شدن برای آبا. پرواز روح انسان آبا. بخشی از موسیقی ها هم ممکنه طراحی شده باشن برای سقوط انسان خب بخشی از موسیقی ها هم به نسبتی که ما با اون برقرار میکنیم اثرشون وابست است شما میتونید با اون موسیقی پرواز بکنید یا با اون موسیقی حتی دوشار تنبلی و رخوت و کسالت بشی بله پس چی شد؟ یه سری موسیقی ها هستن که باعث پرواز میشن دقت کرده این میتونی پرواز کنی یعنی خیلی هم خوب هن جور موسیقی ها به خصوص یه نوشابه انرژیزام قبلش زده باشی دیگه با این موسیقی ها رو زمین بند نمیشی دیگه مثل چی؟ بگی مثل چی؟ سامی یه نونه از اون موسیقی ها برو اینا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 خوب نیست موسیقیایی که به فرموده حاج پناهیان پنایان باعث تنبلی و رخوت و کسالت میشن مثلا اینجور موسیقی ها حدودن تقریبا. <تصفيق> بسته دیگه سامی جان دوچار کسالت نکن چنوندگان عزیزمونو اول هفته ای همون یه دونه از هم پرتابی پروازی یا بذار بریم که آقا حلال شده دیگه تکون بده, تکون بده. تکون بده. بیا بده رو تکون بده بودو آه! تکون بده تکون بده بگو بهم هم تنگ شده واسم بگو دل کسی اومد جلو بگو بره آه! آه! هنر تو به من نشون بده همه یه بسر رو دکه نخدا منو پیرانه دن Tá dando برو بریم که بده برو بریم سره برنامه خودمون و موضوع امروزمون جراحی های زیبایی بکشش و خوشگلش کن ویانی گه شماره 966 بدانید و آگاه باشید که داشتن دماغی زشت و اخلاقی زیبا بسیار بهتر از داشتن دماغی عروسکی و اخلاقی گودزیلایی است پس به جای اینکه بر روی دماغ خود کار کنید بر روی بهتر کردن اخلاق و منش و شخصیت خود تمرکز کنید و بدانید کسی که برای دماغتان قرار است جلب شما بشود اما بهتر که جلب شما نشود اما چه فایده که شما در نهایت برای کمی زیبایی بیشتر دماغ و گونه و لب و اینجا و اونجا و کلن همه جای قدر را عمل کنندگان نید. امزا جمعی از دست به هیچ جاشون ها و فقط روی اخلاق و شخصیت خودشون کار کرده ها و البته هنوز هیچ نیمه گم شده ای به سمتشون نیومده های رادیو هست پس. پس. دا دا دا دا دا از ازت خوشم چند روز برین مرخصی چایی چش... که خسته هم هستین باشه چش... این میگم چون منم خیلی از برنامه موقعم نمیرسم گوش بدم یعنی می دونم میفهمم میشم می سمیره هستم ف... از مونیخ برفی آخه چش چش می چشم میفهمم در که درکتون میکنم ببین یعنی آدم آقا میخواد واسه وایس اینجا کارشو بکنه واسه خوشنوندها کار کنه برنامه بسازه فلو آقا به زرب و زور میخوام بفرستنش بر مرخصی چه کاریه دیگه حالا که اصرار میکنیم ببینیم چطور میشه دیگه حالا قول نمیدم ببینید آقایون خانمه دختر خانمه آقا بسر شاهد باشیم ببینیم ما شیفتگان خدمتیم نتشنگان تشنگان مرخصی ها ولی دیگه خب بخ باید به خواسته های مخاطب احترام گذاشتین کاریش نمیشه کرد دارم, دارم میرم اینجا باید بگید دارم میرم دارم میرم آقا مرخصی برنابرای اما آم جرایه زیبایی خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا، یه زمانی بود هرکی دماغش عمل میکرد دماغ سر بالا عروسکی داشت همچنی خاص خواست و خواستنی میشد الان دیگه از بس همه عمل میکنن دیگه اون دماغ بادم جونیا دماغ اقابی قدیم خاص خواست و خواستنی محسوب میشن والا به خدا علای جما میرید تو خیابون با 100 نفر برخورد میکنی انگاه با یه نفر برخورد کردی باز که همه شک نام هم شدن یعنی این جراحای پلاستیک انگار یه کاغذ الگو دارن بعد هر کی میخوان عمل زیبایی کنم هم کاغذ الگو رو میندازن رو صورتش چهار تا برش از این ور از اون ور میزنن یه ذره ژل و همین ماس که دارن تو گونه و لب و این ور و اون ور اینا تزریق میکنن تموم دیگه به این کار میگن تولید انبوه زیبایی دیگه قافل از اینکه به قول شاعر اگر جاله هر قطره دور شدی چخرمهره با آزاور ازو پر شدی بله اینجوری هاست برای همین هم از که ما توصیح میکنیم حتی اگه دماغتون بدتر از دماغ این برابچه های خودمونه همین ما من و جلال و سامی و سعید و پیلی و شهرام و شهراغیم و اگه دماغتون همین عین ما بهش دست نزنین آقا تا چند وقت دیگه انقدر دماغ عروسکی و صورت های شکل هم زیاد میشه به کل خوشگلی عوض میشه همه اونایی هم که پول دادن دماغارو سربالا کردن دوباره میرن پول میدن دماغاشون رو پایین میکنن چه میدونم به جای دماغ عروسکی دماغ ای و دماغ چماقی و اینا مود میشه میگی نه سب کنی خودتون ببینی ببینی کی گفتم هفته سوالمون اینه به ما بگین چقدر به زیباییتون اهمیت میدین چقدر از لوازم آرایش استفاده میکنین و آیا حاضرین برای زیباتر شدن زیر تیق جراحی برین یا نه این سوال این هفته ماست پس چی شد به ما بگین چقدر به زیباییتون اهمیت میدین چقدر از لوازم آرایش استفاده میکنین و بگین آیا حاضرین برای زیباتر شدن زیر تیق جراحی برین یا خیر فیسبوک کامل صدیق اسمشونه. گفته من پس از لغو تحریما و خریدن هواپیمای جدید از طرف دولت تدبیر و امید میرم گرجستان دماغم عمل میکنم. الان میترسم سوار هواپیمای ملخی بشم. چی خبر گرجستان؟ چه خبر مگه؟ از همه دنیا میرن ایران عمل میکنن دماغشون تو میخوای گرجستان گرجستان؟ اون نمیخوام عمل کنم دیگه چه بهونه میاری؟ مهرنوش توی فیسبوک گفته من پول هم پیدا بکنم عمل زیبایی نمیکنم میرم باش میگردم و خوش میگذرونم ببینید مهنوشا شما اصلا نیازی نداری به نظرم به خدا بیتارف میگم آ. شما نیاز البته به جای این عکس نوزاد شش ماهی که برای پروفایلتون اکسیشو گذاشتین اکس خودتونو بذارین الان من دقیق در میتونم بهتون بگم ولی خب این نوزاد شش که نیازی نداره ظاهرام خوردم حال ندارم شوخی هم ندارم چند تا سوال داشتم نپی چون قشنگ جواب بده اولا یکی دو ماه دیگه میخوای بری دقیقا بگو تا کی هستی دوم من این سعید کی بالو پر میگیره سه من الی کی میاد نکنه شوهرش اجازه نهده ممنور خروجش کرده چهار و من این اصلای مهمتره نویسنده اوس جلال چی میشه هست نیست نکشی دل اون به بریشا دلمون به نوشته هاش خوشه لطفا توضیح بده ممنون بلچ بی احساب بودین شما دیگه درست ما پاسخ هستیم ولی ندیگه در این حد دیگه حالا چون مریضی دلتو نمیشکنیم دیگه ما اتمالا آخرین برنامهمون که برنامه هزارون باشه اگه اتفاقی نیفته نمیدونم تداخلی نشه برنامه رو قطع نکنیم مرخصی نریم و اینا میفته برای اب بعد دیگه از به حضورتون که سعید دمجی داره آبندی آب میکنه خودشو بعد ایشالله را میفتدیدی ها تا موقع ایلی هم هست تازه به ما ملحق شده و هم الان هم تو استدی سلام سلام حال شما خوب, خوب استین شما <تصفيق> خوشوم. چقدر خوش اومدین وله لطف داریم به خود و صفا بردین سلام میکنم خدمت شنوندگان هم از همینجا از پراگ چرا با حجاب و حیا سلیام؟ می‌بینید صداشین حیا موج می‌زنه اصلا. ممنون، و خیلی خوشحالم که پیوستم به جمع. پس فردا خوش می‌گذره یا بد می‌گذره؟ خیلی عالی، خیلی خوب. آره پاچخاری الان اینا؟ نه دیگه یکم فشار زیاد. از زدی <دق> خوب هست است. من که خوبه. فشار زیاده؟ نه، آره. فشار زیاد. یکم، یکم زیاد. یکم آپگرید بشیم طول. آره. بشیم. بله حالا علی هم داره کم کم به حال یاد میگیره دیگه با سعید دارن پشت صحنه برنامه فعلا بیشتر یاد میگیرن و حالا وقتی که همه چیو دقیق دقیق و تمیز یاد گرفتن کم کم میان تو استودیو هم وارد میشن بله با ما خواهند بود خیلی ممنونم علی چه خبر از چیز برامون بگو از این راههای ارتباطی برامون بگو بله راههای مهمون راههای ارتباطی باش شما بله با تشکر از این نقش ویژه‌ای که من می‌گذارم <تصفيق> بله راههای ارتباطی رادیو پاس فردا ایمیل ما هستش پاسوردا@radiofarda.com و اس ام اس های برنامه هست 20420 603 87 41 50 و دو صفر و بیست و س و سه پنجاه برنامه هستش دو صفر چهارصد و بیست بیست و دو یازده بیست و و سی و سه یازده بیست سه و دو چهارصد و بیست و سی وایبر WhatsApp و تلگراممون هم هستش دوسف 420 602 33 8023 و 77 بح بح بح خیلی من مچکر من یه بار دیگه سوال این هفته هم میگم این هفته به ما بگین چقدر به زیواییتون اهمیت میدین چقدر از لوازه آرایش استفاده میکنین و آیا حاضرین برای زیباتر شدن زیر تقطیق جراحی بدین ال... برین الیجان؟ جان شما حاضرین نه من نه اصلا نه نه من زیبایی طبیعی رو همش ترجیح میدم بسیاره عالی زیبایی طبیعی الی خانم رو هم حالا ان کم کم بهتون نشون میدیم حالا هنوز خیلی زوده حالا کم کم دیگه و برامون بگید اگر خواستید با ما در تماس باشید با راههای ارتباطی که الی گفت میتونید تماس بگیرید و بگید مثلا حاضرین یه دست به قوز دماغتون بکشین یا مثلا بعضی برجستگی ها رو برجست تر و بعضی دیگه از برج سیگی ها رو صاف کنین و مثلا داشتن یه شکم سیکس پک مثلا چقدر براتون اهمیت داره آقایون آقایون زیر ابرو برداشت های خاطره ای حسی چیزی در باره زیر دارن بگن ما هم در جریان باشین حتی میتونید برام از سر ها پشت بازوتون بگید بگید آیا واقعا فکر میکنید که با وزن زدن میشه دخترکش شود اینم یک سوالیه که میتونید جواب بدید خلاص این هفته مرا خودتون بدونید و بهمون بگید به چه قیمتی حاضرین که زیباتر و خواستنی تر به نظر برسید همه رو تو شعال بیشم من با بیجام با تبیشم فیداره ما پریشم توی فازم اینه در بیشم خانوت میشه ام پیشم اینگه خوبه میخواهم مریشم کاش منو گوشید بورم که این قباش میگیری سفی دو ساعت کارتی که کنم ولی باسه خانم کلیشم تفلی اونم نگفت هیچی به ما ولی انگه هرکباتی به ما نه با جیب ما عجیب ها میمی تو ما سفریم با هم دیویز دست منو نگاتیم میش از اون بلنگگان لی تون وللا اما چند وقت پیش شایاتی جسته و گریخته پخ شد و بعضا توی رسانه هم منعکس شد که سریال تلویزیونی معمای شاه به خاطر حزینه های زیادی که داشته و عدم استقبال مردم تولیدش متوقف شده ظاهرم قرار بوده دوستان در قالب یه سریال پرخرج تاریخی زندگی شاه سابق ایران رو به تصویر بکشن ولی انقدر برای خوش و جا شدن توی دل ما از زمله واقعیات تاریخی رو تحریف میکنن که نه تنها صدای مردم که صدا خودشون هم دیگه در میاد الان به صحبت این روحانی که به دعوت از شبکی دو اومده و داره در مورد این سریال صحبت میکنه لطفاً گوش کنید بعد واقعاً خداوکیلی فکر میکنید این نشون بدیم مردم میکنند وای وای چقدر مثلا اینه بد بودن تو باور پذیری اینا چقدر مطمئنی؟ اگر نباشه جوک نمیگن که الان سفیر آمریکا میگه برای قارت چه چیزی دارید ما این هفته از شما وقارت کنیم یار رضاخوم میگه که تو میتونی یه کاری کنی که به این مملکت خیانت کنی اینا دیالوگای نیست که مردم بپذیرن بله هی نشون بدیم که بگیم بله شاه هم جنس باز بوده حالا مردم اینو پذیرفتن بعد مشکل ما اینه بعد این اثبات شد بله حالا ما که ندیدیم این سریال رو ولی واقعا توی این سریال چنین چیزایی گفته شده واقعا توی این سریال مثلا شاه خیلی مثلا گلدروشت نصیحت میکنه که تا میتونین به کشورتون خیانت کنی. مثلا شاه هم جنسگرا بوده؟ البته هم جنسگرا بودن که خب اشکالی نداره ولی یه چیزی بعد بگم به قول معروف بگنجه دیگه. توی کره شمالی هم بخوان راجع به دشمناشون سریال تو تخیلی بسازن. اینقدر دیگه شور نمیکنن قضیه رو دیگه. واقعا مردم مردمو چی فرض کردین؟ میگن های تولید این سریال بیشتر از 20 میلیارد تومن بوده حدود 500 تا بازیگر غیر اصلی و 80 تا بازیگر اصلی و مطرح داشته دی خودتون تا تایشو بخونید که وقتی یه چونین رو برای ساخت چونین پروژه عظیمی در اختیار چنین اندیشمندانی قرار میدن ببینین باقی پولای صدا و سیما برای ساختن پروژه هایی داره تو جیب چه اساتیدی میره یعنی خسته نباشن همگی بلکل همه باهم صحبت میکرم با دوستان که بودم بلی. و اما که میرسیدم میگفتم به قول فرشید آما. آما حالا اونا که صحبت میکنن انقدر که تکرار شده میگن به قول فریال آما با من خلو. زانیار هستم از سهران بله خواهش می‌کنم شما البته خب خوب کپی رایت رعایت می‌کردیم میگفتیم به قول فرجید و اینا خیلی هم ممنون به دوستانتون هم تذکر بدین که تیک کلامی و حال سخن قصاری جمله زیبایی چیزی از من بخوان جای استفاده کنن نقل کنن حقوق مؤلف رو تمام و کمال در نظر بگیرن و به قول فرجید حتما بگن دیگه مرسی از تماس و اطلاع رسانیتون تکنیکرونی ما از خود آدمی است که میخواد به چشم خود پیروزی باشد کامران را ملککووطی سلام سلامنج سلام،, سلام همگی. بزن بریم ببینیم اول هفته ای چه خبر داری؟ آنجوم بالاخره بعد از های زیاد فیلم نقش نگاه به کارگردانی علی عطشانی از چهارشنبه نمایش عمومی شروع شد تو این فیلم ناصر ملکمتی بعد از 31 سال بازی کرده همینطور طور آتیلا پسیانی بهرام رادان رضا ناجی و آیلین حسینی که اولین کارش هست بازیگر نقش اصلی فیلم هستند بخشی از ازای فیلم با هم بشنویم بعد من میگم که چه اتفاقاتی برای این فیلم تو همین دو روز افتاده دست که به سیسیده گردم که حامیرم نمیشه قبول کنه بدون تعهدنامه نباید نگار پاشو بذاره تو خونه من ما اصلا جدا شدیم نمیدرستیم؟ نگار مثل دختری منیم من اون من سپردم به شما به قریبه که نسپردم چی نیم از شرحیزه این دختری قبول کنه؟ بابا این چه حرفیه میزنی؟ دختر پرودشگاهیه جوز که نداره که منیر، اون که مادرجون داده بود سر نیست دوزیدنش. بله بخشی از صدای فیلم نقش نگار ساخته علی اتشانی رو شنیدیم ماجراها و اتفاقاتی که گفتی چی بوده کامرا؟ مهم ترین چرت اصلی اکران فیلم فرژن در آوردن اسم سرمایه گذار فیلم یعنی جناب بابک خان زنجانی بود که خوب به سلامتی در اومد و لاق شد اما تلویزیون به کارگردان فیلم گفته در صورتی میتونه تیزر تلویزیونو داشته باشه که به هیچ عنوان در هیچ مورد تبلیغی حتی بیلبرد توی خیابون تصویری از ناصر ملک مطی نباشه اگر تبلیغات ای داشته باشن هم که باید برن دادرای فرهنگ رسانه جواب بدن با این وضعیت که گفتی فیلم فروشی هم داشته یا نه با همین وضعیت رو در اختیار داشتن 18 تا سینما توی تهران و شهر سار فیلم بعد نبوده تو دو سه روز اول بالای 22 میلیون گیشه داشته بسیار خوب خیلی هم خوب از موسیقی چه خبر کام را؟ از موسی جونم براتون بگه که از دیشب رسیتال پیانوی شهرزاد روحانی تو فرانکسرای نیاوران شروع شده حالا دیشب و امشب که دیگه گذشت اما دو تا اجرا از این رسیتال هنوز باقی فردا شب و جمعه دوم بهمن تو این رسیتال روحانی ساختهای خودشه که به صورت دوه تنظیم شده رو اجرا میکنه و یلدا صمدی هم نوازنده ی همراه این اجراست بسیار خوب ممنونم ازت کامران عزیز باد خدا حفظی میکنیم و بخشی از یکی از کارهای ساعتاد روحانی به اسم رقص بهار رو تا سفرن شب خدا میگه. با سلام و سی شنبه شب رازم ابراز خوشحالی از برداشت شدن ممنوعیت فروش هواپیمای مسافربری به ایران با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می انتقاد پادشاه اردن از دخالت ایران در امور دیگر کشورها و نظر کارشناسان که پس این عربستان شما هم که هی داره فت و فت یمن و بمبارون میکنه قصد خیلی داره نه؟ سفر وزرای خارجی ایران و آمریکا به وین در آستانه روز اجراوی برجام و توصیه کارشناسان به ظریف که جلوی خبرنگارا شما یه بار با چری دست به یقه شدید دلواپس ایرانی دهنشون بسته شه و احتمال استفاده سخت افضار چینی برای انتخابات اسفند و نظر کارشناسان که خدا به خیر کنه قبلا که با جنس چینی نبود انتخابات اونجوری می شد حالا که دیگه کلن بی خیالش مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشهور خبرها با همکارم بل بل با سلام وزارت مسکن اعلام کرد وام 170 میلیون تومانی مسکن در راه است در همین باره یکی از کارشناسان امور وام کشور به خبرنگار ما گفت این قدمی بزرگ در راه خانهدار کردن مردم است و میتواند به زودی رؤیای هر خانواده ایرانی یک واحد مسکونی را به یک واقعیت تبدیل کند پس از این خبرنگار ما از وی پرسید همین الان با رقم وام‌خراست 70 میلیونی قسط وام مسکن حدود 3 میلیون تومان می‌شود و خیلی از خانواده‌های ایرانی توان پرداخت این قسط را هم ندارند با این وصف به نظر شما این خانواده‌ها برای پرداخت قسط 5 6 میلیون تومانی وام مسکن هفتاد میلیونی باید چکار کنند که وی در پاسخ به این سوال یادوار شد خدا کریمه پایان ماشوه اخبار. بله همکتون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جاو آقای جناب سرهنگ هستیم بله. سرهنگ جان بفرم بندم سلام عرض بله. میکنم در خدمتی شما هستم خب سرهنگ از این غایقای آمریکایی که گرفته بودین چه خبر؟ اونا که ما نگرفته بودیم برادرانمون در سپاه زحمتش کشیده کشیده بودم خب همین دیگه حالا ما به سپاه که دستیسی بله. نداریم و شما رفیق جن رفق بگو ببینیم خبر اختصاصی در این زمینه چی داری برامون می البته ببینید بله دوستانی ما در سپاه یه سری اطلاعات ببنده دادن که خب البته طبقه بندی شده هستن این ها و سر حیره این... لوس لوست نکن خودت دیگه بیدن... طبقه بندی گلی چنده بگی دیگه بگو ببینید بند اسراری ب... نظام ایران نمی تونم بگم به شما که آقا جون یه کوچیدی شه بگو به خاطر شروندایی تم بمیره دونه بچت دونه مادرت ب... ب... بگی دیگه باشه با شما برا عقب جلوی اون نایان چی چین کارای سباگ بله خب سردار سلام سلامی شینی فرمانده کلیسه پا از دوستانی دارانی مهد کودکی بندستا ها. اطلاعاتی را ببندن در این بار شو کچی ما رو سره و ممز... بگوی دیگه با, با مردیم بگو بگو, بگو, بگو بگو اجازه بفرم عرض کنم که اینشون میگفت وقتی این قایق های آمریکایی وارد واردی ایران شدن شناورهای های ایرانی آه. با تعدادی نیروه های کم اونا رو محاصره کرد بعدم با شجاعتی خاصی اونا رو به اسارت در آوردن سرن یک سلمل نیروهای آمریکایی ب... وقتی که دستگیر شدن چی بود؟ خب طبقه گفته این سردارینا داشتن گریه می خیلی هم شدید آقا منطقه جدتی... وقتی مهربانی پاستارانی آه. عزیزا دیدن دیگه زای رنگریشان بند اومده جدی میگی چجوری ای... یعنی مهربانی کردن یعنی بله. نازشون کردن گفتن نازی نازی ای... نا نازی تو پوست پیازی گریه نکن اینا نه خیمک يعني... بچه بازی است سالی نظامی آقا جو وقتی با رفتاری هرفه یا مطابق با اصولی اسلامی پاسدارانی ما مواجه شدن دیگه فهمیدن که مشکلینی خب به سردار سلامی دیگه چی تعریف کرد سرنی بله ای... سردار تعریف میکرد که اتفاقا در همون نزدیکی ناوی هواپی ما بری آمریکایی با شست هواپی ما و هزار نفر نیرو حاضر بود ولی خب همین و هم خیلی دست پاچه شده و هی هواپیماشون ما رو به پرواز در می آوردن بر فرازی منطقه و یعنی ناو به اون عظمت در برابر چند تا غایق ایرانی دست پاچه شده بود ببینید شما انگاه نیروی ایمانی رزمندهای های ما را دست کم گرفتی آقا خوب خب سرنگ در فیلم ها و گزارش ها دیدیم بحنه. که نیروهای آمریکایی با ماکارونی و سیب مولید پذیرایی قرار گرفتن درسته نه, نه خیر ببینید ماکارونی نبود آقای خوراکی مرغ بود سیبشم سیب فرنا لای با قاتدموند بود سنگ به جانت ماکارونی بود من متخصص ماکارونی هم بخدا در این زمینی با من بحث نکن دیگه من می... من نمیدونم آقا هر چی بود خوب, خوب بود میگه اتفاقا یکی از هم کارآی بنده یا فیلمی از مصاحبه یکی از این نیروهای آمریکایی فرستاده بود برای من ای بله که فارسی هم بلد بود داشت خیلی تعریف میکرد از پذیرایی تو موبایل بنده هست حالا بعد بله حتما خب بگیم بله ما ببینیم چیا شهرامندگارم گوش می‌کنن ببین واقعا مفصل اشکال نداره اشکال دیگه من چشمای بزدی که سرایم به عنوان جانشین صدا و سیما میگم بزنید دیگه بله اجازه بده من پیداش کنم این ایول بله. این کجا بود ها اینا ها این اینا هاش بفرمایید بگیرش اینجا جلوی میکروفون اگه اینجا اینا گشتبانش ها اینجا علیه. بگیرن فلش کن فلش حالا بله بفرمایید اینم از آخرشین بزن اینو سن همامش مثلا تمیز بود قزازش میبینید با این که... نشا بود دادن سنگ اورتا همينه... دادن خیلی قشنگ س... ببینید آقا دیدید خیلی رازیانیشون یا این یعنی بله. سرهنگ این که کی دابسمش کی تو بابا کردی اینو سرنگ معلومه که باور کردم این تصویر نظامی اجاب... آمریکایی صداشم که شنیده یا سرنگ صدای این منده خدا رو گذاشته روی این تصویر سرباز آمریکایی شوخی این یعنی تو آمان... اینو نمیفهمی سرنگ واقعا این... واقعا من برایش ما متأسفم ببینید همه ش... آورد حائن من... نظامو با اینجور جور های زشت با... زیر سوال میبرید شما یعنی شما نمیفهمی که این با بالاج آمریکایی فارسی حرف میزنه سرنگ این آمریکایی بود بله ای... سرهنگ بگو که داری با من شوخی میکنی یعنی چی بگو چی چی من در ابراबरी او... دوربین مخفی هستم سرنگ اینو به من بگو خ... بگو من طاقتش تو ج... چه جوری پلیسی هستی آخه سرعزی من مگه نباید حواست به همه چی باشه تو من من نمیگیرم چی میگی شما ببین چرا حذیون یعنی... میگی آقا تقصیر ب... من است که تلاوتی درجه یکم در اختیار شما قرار میده اینا تلهات طبقه بندی شاده بوده آقا من دیگه اینجا نمیمونم من رفتم آقا نگاه وای خدا هم, این دابسمش رو باور کردی این دابسمش رو باور کردی بعد شبا که ما میخوابیم اوبراه. این بیداره خدا. که ما بلای سرمون نید اینه بگی بخواب سر سران اینجوری سنگین تری دیگه اوه کلم سوت کشیده این باور کردی که آمریکایی داره میگه حمامش تمیز بود وای وای وای وای وای وای وای I love you. دو فارسی رفته بودیم سلام علیکم. تهران توی مرکزی سونو بشیم بعد دم درخواستیم بریم تو دستشویی میکاپ بکنیم رژ تمدید بکنیم بعد احبا. دیدیم آقایو نمیذاره همم هم یه آقاهوندی آقا میخوام بریم تو دچویی بیکاپ کن نه نمیشه خانوم یهو دیدیم یه خانوم چادری در, در, در دستشویی دچویی به سوالایکی میکنه و نگاهش میکنم حالش خوبه این هاش خانوم چه اینجوری میکنه نگو نگو زن هاشمی بوده فجون بوده فکر کنم دادجی با فجعون آشنا شده باشه. بعبع <تصفيق> چشمتون روشن. چشو سلام ما هم میرسوندیم خدمتتون بر حال. دستش رو چرا حالو قروخ کرده بودن؟ نمیدونم حالا خوبه تو دستش نیامده بودم فکر کن در دستش زنر رو وا کنی با 4 تا گولاخ یقه آخوندی مواجه بشی. خیلی ترسناکه دیگه. اکبر جان اگه برنامه رو گوش میدی یه رسیدگی کن دیگه. حالا چکات که داره پاس میشه ولی دیگه تیم حفاظت افت خانم مزاحم اجابت مساج مزاج مردم نشن دیگه. اون یون قدیم ندیمای که از مشخصه های زیبایی چاقی بود مثلا میخواستن از زیبایی یه دختری تعریف کنن همیشه به توپول بودنش هم اشاره میکردن برای همینم هم که مثلا اگه سری به هر هم و سلاطینو گذاشته میزدیم متوجه میشدین که زیر 110 کیلو از راه نمیدادن یعنی اگه کسی وزنی کم میکرد اصطلاحا میگفتن هیکلش خراب شد چه شش شامی افتاد میافتاد میفرستادنش جایی دیگه. در یک سنگر دیگه به سلطان خدمت کنه ولی واقعا چه دوران بوده فکر کن هرچی بیشتر میخوردی خوش شیکلتر بازم میشدی خیلی الان دقیقا برکس شدهه یعنی چاق بودن نقطه مقابل زیبایی محسوب میشه و برای همین هم مردم به شیوا های مختلف سعی میکنن لاغر و لاغرتر و لاغرتر باشن یکی از این شیوا ها که کمتر از بقیه شیوه ها سختی داره و البته بیشتر از بقیهشون درد و اووارض داره عمل های مختلف لیپوساکشن و لیپولیز و لیپوماتیککن و اینجور چیز یعنی فکر فکر با 120 دو تا عمل دو تا باشه که کیلویی ازت روغ میکشم با 6 کلو هم میش میر خونه. الان که بعدش چه بلایی سرت میاد اونم چند وقت بعد کنج خونه بمونی تا بدنت بفهمه تو چه بلایی سرش اومده و چقدر درد بکشی چه خطراتی داره اینجور عملها و اینا و اینا و اونا اون دیگه بحث دیگه است کسی که برای لاغرتر شدن و خوشی کلتر شدن روی تخت جراحی میره دیگه اصلاً هم میدونی اینجوری میگن به آخر ته خط دیگه می میبینی اینجور آدما قبل از عمل وقتی دکتر براشون از مخاطرات جراحی میگه مثلا رضایت نامه عملو میارن امضا کنن و اینا در واقع دارن به دکترشون میگن که دکتر ببین بکشم و, و خوشگلم کن <تصفيق> یاسی که از همکارای شرکت تیگه پروسی یک ساله انقدر جراحی مختلف رو صورتش انجام داده که دیروز وقتی بعد یک ماه مرخصی واسه آخرین عمل زیبایی اومد شرکت هیش که نشناختش آبدارشمون دمه در جلیش گرفته بود گفته بود کجا خانم با کی کار داری؟ یاسی داشت دادو بیداد میکرد که من رسیدم پا میانی کردم بهش گفتم خب حق بده بهش خیلی عوض شدی سرشو با ناز یکم عقب کشید گفت خوشگل شدم گفتم تا تعریفت از خوشگلی چی باشه گفت همینی که میبینی البته هنوز یه جاهایی از بدنم جراحی لازم داره فعلا کار صورتم تموم شده یعنی به ایدئال زیباییم رسیدم یه نگاهی به پیشونی بلند شده و فاصله دماغ و دهنش که بیشتر کرده و چشما که از دو طرف کشیده و لبا لبا و گونه ها و فک و جراحی لسهی که کردن داختم گفتم ببین تو الان خودت رو تو آینه میبینی احساس قریبی نمیکنی؟ گفت نه اونیه که همیشه از خودم تصور میکردم روبرون میبینم اعتماد به نفسم بالاتر رفته ریافه در هم رفته منو که دید گفت همه که مثل تو اعتماد در نفس ندارن با اون دماغ گوشتی گنده تو صورتشون بایستن در مورد زیبایی یکی به دوکنن که گفتم باشه ببخشید خوشگله موسیقی دیگه چند بار میگی؟ یه بار گفتی فهمیدیم دیگه این حرفارو رو بلش. خانم و آقایون دختر خانم و آقا پسرات ظاهراً سردار نقدی میدونسته که حاج آقا توی نماز جمعه دیروز تهران چی میخواد بگه که چند روز پیشش رسمن دبه کرده بود حاج آقا موهدی دیروز فرمودن که دبه کردن شما هم دبه کنید بله سردار نقدی هم خب نامردی نکردن یه جوری دبه کردن که اصلا آدم رسمان شاخ در میاره روش دب به ظاهر میشه ایشون فرموده بودن که حمله به سفارت عربستان دقت کنین فرموده بودن حمله به سفارت عربستان سردار نقدی اسید پاشی به صورت خانم ها قتل های زنجیره کار کی بوده؟ هی گفتی؟ نه طور خدا هی گفتی؟ نه عمرن چی؟ بگی؟ فتنگران نه نه نه بابا این که کاش گفته بودن فتنگران ایشون گفته بودن اینا همش کار سلطنت طلبا بوده یعنی مو خدا وکیلی سود میکشه آخه سلطنت در رو بابا منم سردار از کجا دروردی شما طرز اینکه خوبه الان همطور که میدونید آقای ظریف و آقای کریمی توی وین هستن تا برداشتن تحریما و اجرای شدن برجام رو اعلام کنن دیگه همین الاناتس که دیگه خبرو بیاد و و در همین عین یهو خبر اومد همین دقایقی پیش ساعا یک دو ساعت پیش که چهار تا زندانی دوملیتی ایرانی آمریکایی رو که ایران براشون حکم و اعدام و زندان‌های طولانی مدت بریده بود و از همین بغل همین بغل گوشه های برجام آزاد کردن رفته پیکارش بابا آخه مگه حاجاقا موحدی همین دیروز نگفته بودن که آمریکا رو ادب کنید بله جدیدن اینجوری آمریکا رو ادب میکنن اینجوری عزیزان حرفای این ائمه جمعه رو زیر پا میذارن که در نهایت ایشون مجبور میشن با ناامیدی از این پندا و اندرزا بهمون بدن اینا مبادا دشمن از روح لطیف و ظریف شما سوء استفاده کنند بله روح لطیف و ظریف و قومدنا یه زردی یه دامن پیدا میکنه حالا میگن روح لطیف و ظریف و کریف و عراقچی و تقدیروانچی شما سوء استفاده کنند فریبورز غریب سلام سلام سلام به همگی فرشی فریبورز امیدامون باختن به قطر دیشب هاشیه مهم بازی چی بود؟ آره با باخت این فرشی جان اما محمد مایلیکو هم مدیر فنیه تیم امید بعد از باخت دیشب تو جمع خبرنگارا اونطوری که خبراران نوشته اشاره کرده به سن چند تا از بازی های تیم قطر و گفته اینا سنشون بیشتر از حد قانونی مصداقته عجب بهانه خوبی میتونه باشه برای باختی راستی کیروش و مایلی کهن با هم روبرو نشودن اونجا بورس کوچ فرایگ نه خوش <تصفح> <تصفح> بختانه به خیر گذشت هم دیگر ندیدن مستقن <تصفح> اما چند نفر اعتراض داشتن به کیروش که موقعی که تیم ایران به سوریه گل زد تو بازی اول تو هم که اون بالا نشسته بودی یعنی آقای کیروش تو جایگاه مخصوص چرا شادی بعد از گل نکردی؟ عجب. حالا البته که دیگه دیر شد و کیروش قطر رو ترک کرد ولی ان دفعه بعد میگیم کیروش شادی بعد از گل رو از محمد نصرتی و شیش رضایی یاد بگیره. دیگه چه خبر؟ یه سری بزنیم به بوکس فرشید جان علی مظاهری کاپیتان تیم ملی بوکس ایرانی که از بوکسورهای پر افتخار کشورمون یه مصاحبه انتقادی کرده با سیما در مورد وضعیت خودش و بیمهری مسئولان اگه اجازه بدی گوش بدیم حرفاشو. بشنو. ما زمانی که برای اردو تیم ملی رفتیم در کانک زندگی می کردیم در شرایط خیلی سخت اما خب با بزر بازیه آسیایی چند مدتی به بذلت مصیبت کمر از میادین بوخ دور بودم اما خب تو این مدتی که دور بودم حتی فدراسیونی احوالی از موناپورتید که ببینیم که اوضاع احوال ما چطور هیچ کار ریشه ای و اساسی هنوز انجام نداده و داری ورزش از جوانانم هم متأسفانه اونم هیچ کاری انجام نداده حالا من داریم باشگاه خصوصی دارم تمرین میکنم بله خدا رو شکر خیالم راحت شد در این مورد هیچکی هیچ کاری انجام نداده ما فکر میکردیم قبلاها بعضیا مثلا یه کاره انجام میدن بعضیا نه بله ولی می‌سگه بله. ممنونم ازت فریدورز عزیز. باد خدا حفظی می‌کنیم تا فردا. تا فردا خدا نگهدار. آیا میدونید که در کشور نوآش زر دنیا چه کم و مهریه وجود داره. آیا که موقع عقد می‌کنیم مهریه رو چی داده و چی گرفته. <تصفح> آیا چک های وصول نشده خود را از دست رفته می بینید؟ با شر آوران دیگر نگران نباشید. کارشناسان زبده و شرب پاکن شر آوران. فقط با یک تماس شما مهریه و چک از دست رفته شما را زنده می کنند. شر آوران. وای نمیدونین من با مسعودم چه زندگی شیرین و خوبی دارم مسعودم به خصوص از وقتی که مهریم اجرا گذاشتم و این آقایین شراوران گرفتن انداختن زندان انقدر خوب شده که من همش درموستش قنج میره دیگه صدشم در نمیاد که هیچ اون باقه امو اکبرشم گرفته انداخت پشت بالا. ای وای برم مسعودم الان وقت فرصه شه مسعودم مسعودم شراوران آقا آدم بد حساب و باید داد دست شرآوران این شریک ما رو یک جوری با مفتول توجیهش کردن بعدم بردنش تحویل زندونش دادن که فکر کنم تا عمر داره دیگه چه که بی محل نکشه دمشون گرد شراوران شهره را و که با دندان هم باز نمی شود برای باز کردن به دستان پرتوان شعراوران مسبوری داره شعر آوران <تصفيق> بامزستا یه زمانی تو دنیای ما مردم میرفتن در مغازه میگفتن آقا مثلا نیم کیل پنیر بده چه دیویز پنجا گیره کره بده مثلا یک کیلو از گوشکوبا بده الان تو دور زمانه ما دیگه مردم میرن در مغازه پروتز فروشی میگن اما به بخشی دیویز کردن پروتز میخواهم بر عمل سینه مثلا بعدم ظاهران آقای خانم پروتز فروش میپرسته چنو پروتزی میخواین شما متوجه با توجه محتویات جیبتون یه مدلش رو میخرین تحویل آقای قانون دکتر میدین که چیکار کنه؟ این پروتزارو در نقاط مختلف مورد نظر شما جاسازی کنه تا چی بشه؟ تا شما خوشگلتر و خوش فرمتر به نظر بیاید یعنی ببین الان ای پدر بزرگه هیچی ها لو کن پدر بزرگه پدر بزرگه من یه لحظه مثلا سر از غب بلند کنه امتی سحنهایی رو ببینه که ملت میرن یه چیزایی میخرن که دکتر بچپونه تو بدنشون که خوشگل تر بشن دیگه رسما خواب به خواب میشه بعد دلیل اصلی مرگشون نه سکته ای که چل پنجا سال پیش کرده که مواجهه با دنیا این روزهای ما بزنن تو مدارکش والا به خدا بعد حالا فقط این نیست شما فرض کن همین پدر بزرگی پدر بزرگی بنده سر از گور بلند کنه ببینه یه عزیزی رفته پروتز کار گذاشته در باسن مبارک بعد حالا مثلا یا پروتز قلابی بوده یا نمیدونم چینی بوده یا دکتره دکتر نبوده هیچطور بوده خلاصه چند روز بعد از عمل میبینم پروتز همچه راه افتاده در بدر دوستامون باز خودش داره میره مثلا رفته پشت زانوش گیر کرده وای وای و یعنی فکر کنم پدر بزرگی پدر بزرگی بنده از مردن پشیمون بشه اینجوری از قبلش باشه پا بذاره به فرار برویم مثلا یه جایی که توش اینقدر همچی پروتزی فیک و پروتز و عمل و این چیزا نباشه اصلا دیگه پدر بزرگی پدر بزرگی هم دیگه سندش شما در نظر بگیری یه ذره تا حضرت آدم فاصله داره و یعنی ما که اصلا این حرفا رو با هم نداریم. وسته اش اش مور مور گس گسی هرچی میگف میگفتم از جونم بشه با خودش میگفه صدیقونم بشه یه کاری کنی رابطهای یاد کنی به فهمی لیلی که یه بری فریاد کنی تا دنیا دنیا سلیم همینه مجنون بازرگترین ام مگه زن؟ فرداده فرداده روز نامه امروز پیش خوب روزنامه یارمان امروز با اشاره به اثرات کاهش قیمت نفت بر پرداخت یارانه ها پرداخت یارانه غیر ممکن است خب اینجوری پس پرداخت پول آب و برق و گازم غیر ممکن است دیگه چیزی که عوض داره گله نداره والا با این یارانه هاش میشه روز روزنامه اعتماد به نقل از هاشمی رفسنجانی کسی از رد صلاحیت ها ناراحت نشود نه بابا ناراحت برای بچه بچه‌ها ماشاءالله جنباب و جنبوها همه بالا از قدیم گفتن هر رد صلاحیتی پلی برای رد صلاحیت بعدی برنامه هم تموم شد محمد رزا عبدالملکیان گفته زیبا زیبا تمام حرف دلم این است من عشق را به نام تو آغاز کردم در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا شب تو خوش وقتی در و کم بستی تا خود حساب گریه کردم خاطراتو دوره کردم کشکی میزاشی برگردم منو تنهایی منو بیهای تن با یه خود کار رو بشم بیدارم من گلشم یه جوری رفت و درم بس که هنوز صدای در تو سرم هست اینو فهمیدم همون لحظه که هرکی سنگ دل تره برنده حتی ندارم نفس خستست مغزم میخونه مثل قفس در بستست شده واسه من هر لحظه نمیدونم اشقی تو دلش اصن هست اگه چشمام که فقط واسه اینه که آدم و حسودن هر موقع که نبودم پشتم زدن منو تو دل تو کشتن فقط تعریفشون از ست تا خوشتر فهمیدم که خودی از همه دشمن منو پیچیدن و خودشون به سمت تو مدن اونا که فکر میکردم از همه خوشتر